خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید خوشا به حال صلح دهندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند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 تا همه آن تحقق یابد، پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد، در پادشاه آسمانی تسترین فرد محسوب خواهد شد، حالان که هرکس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاه آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد.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 آنگاه برگرد و حدیه خیش را تقدیم کن. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد.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 اگر دست راستت تو را گمراه میسازد آن را ببر و دور انداز زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی همچنین گفته شده هرگاه مردی با زن خود متارکه نماید باید طلاق نامه‌ای به او بدهد اما من به شما میگویم هرگاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد او را به زناکاری میکشاند و هر کس با چنین زنی ازدواج نماید، زنا میکند. همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد، قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما. اما من میگویم به هیچ وچ قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پاینداز او است، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است و نه به سر خود زیرا قادر نیستیم موی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد. زیاده برین از شیطان است. شنیده ای که گفته شده: چش به عوض چش و دندان به عوض دندان اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند. بدی نکن و اگر کسی برگونه ی راست تو سیلی میزند، گونه دیگر خود را به طرف او برگردان و هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهند به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل راه مجبور نماید دو میل با او برو. به کسی که از تو چیزی می ببخش. و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می رسانن، دعا کنید به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوقلادهی کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.